هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند مهرافرین سلام افسانه ها ریشه در زندگی و احساس آدمی دارند خوندن و شنیدن افسانه ها درون آدمی رو تهذیب میکنه و نکات گرانما ای رو به انسان میآموزه. در برنامه هزار افسانه امشب افسانه ایرانی براتون نقل می کنم به نام افسانه لاکپشت و دختر پادشاه برگرفته از کتاب نمونه هایی از قصه های ایرانی گردآوری افشین نادری امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبای ایرانی لذت ببرید و پند و حکمت های نهفته درون رو دریابید روزی روزگاری آسیابانی بود که با همسرش زندگی سختی داشتند. روزی از روزها آسیابان در کنار آسیابش لاک پشتی رو دید که به پشت افتاده و ناله میکنه. لاکپشت پشت که چشمش به آسیابان افتاد التماس کنن گفت آخ ای آسیابون مهربون آخ منو نجات بده خواهش میکنم. منو نجات بده آسیابان لاک پشت رو برگردوند و بعد هم اونو به خونش برد و کنار تنوری که زنش در اون نون میپخت گذاشت لاک پشت بعد از اینکه که دید گرم و راهته رو کرد به آسیابان و گفت آه پدر جان از تو ممنونم که منو نجات دادی حالا یه خواهش دیگه از تو دارم بیا و پدری کن و یه زحمتی بکش بکشو دختر پادشاه رو از پادشاه برام خواستگاری کن آسیابان که نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاره گفت به حق چیزهای نشنیده و ندیده تو کجا و آدمی زاد کجا؟ اونم دختر پادشاه اما لاکپشت با چنان اطمینانی خواستش رو تکرار کرد که زن آسیابان هم از اون حمایت کرد و گفت ما به تو کمک میکنیم و میریم دختر پادشاه رو برات خواستگاری میکنیم آسیابان نگاهی از سر تعجب به زنش انداخت و گفت زن این چه که میزنی مگه عقلت رو از دست دادی پادشاه چطوری دختری یکی دونش رو میده به لاک پشت ها؟ زن شوهرش رو کشید کنار یارون گفت مرد شاید حکمتی در کاره شاید این لک پشت از ما بهترون باشه ما که نمیدونیم آسیابان فکری کرد و حرف زنش رو پذیرفت و قرار شد فردا صبح به قصر پادشاه بره و دختر پادشاه رو بر لاک پشت خواستگاری کنیم فردا صبح آسیابان با ترس و لرز به قصر پادشاه رفت و بعد از اینکه اجازه ملاقات گرفت با ترس و لرز به نزد پادشاه رسید و گفت اه اه قبله آلم به سلامت باد من, من جسارتا اومدم تا از دختر یکی یدونه شما برای پسرم خاستگاری کنم البته البته قبله آلم به سلامت باد جسارت بنده رو میبخشید پادشاه نگاهی به سرووز آسیابون انداخت و با عصبانیت گفت تو؟ هم. تو چطور به خودت جرأت دادی از دختر من خاستگاری کنی ها؟ تو از تو که یه آسیابونی بالاتر نیست؟ هست؟ آسیابون با ترس و لرز جواب داد البته قربان البته که هیچ کس لیاقت همسری دختر شما رو نداره ولی ولی قربان پسر من پادشاه باز هم عصبانی شد و خواست دستور بده که آسیابان رو از غصب بندازن بیرون که وزیر پادرمینی کرد و گفت قربان قربان اجازه بدین جسارتا ممکن پسر این مرد مثل پدرش نباشه و مال و منالی داشته باشه و در شأن دختر قبله عالم باشه. پادشاه کمی آروم گرفت و وزیر رو کرد به آسیابان و گفت ای مرد اگه پسرت بخواد با دختر پادشاه ازدواج کنه باید یه قصر از طلا و یه قصر از نقره یه باغ از یشم و یه باغ از زمرد مهر دختر قبله عالم کنه. آیا پسر تو این شرایط رو داره؟ آسیابان که به لاکپشت پشت قول داده بود رضایت پادشاه رو جلب کنه فورا گفت: بله بله بله پسر من از احده مهر دختر پادشاه برمیاد پادشاه با تجب نگاهی به وزیر انداخت وزیر گفت یادت باشه اگه پسرت نتونه به حرفی که زده عمل کنه، گردنش بالای داره. آسیابان باز هم تاکید کرد که پسرش این توان رو داره و مشکلی نیست. بعد از غصر پادشاه بیرون اومد و به طرف خونش راه افتاد. اما توی راه کمی که فکر کرد، نگرانی و استراب وجودش رو دربر گرفت که خدایا نکنه. نکنه لاکبوشت از اهده این شرطی که من پذیرفتم بر نیاد اون وقت چی میشه؟ آه یه قصر از تلا یه قصر از نقره وای وای چه اشتباهی کردم پذیرفتم ولی دیگه کاریش نمیشه کرد قبول کردیم باید تا آخرش بریم مرد آسیابان به خونه که رسید جریان رو برای لاکپشت تعریف کرد لاکپشت خندید و گفت <تصفيق> اینکه کاری نداره پدرجان همین فردا همین این چیزایی رو که پادشاه برای مهر دخترش تعین کرده حاضر میکنم آسیابان با تعجب پرسید چطوری این کار غیرممکنه لاکپشت بازم خندید و گفت <تصفيق> <تصفح> نگران نباش، فردا همه چیز آماده است فردا صبح زود خودت میبینی که همه چیز ممکن شده مرد آسیابان در حالی که سخت، در تعجب و ناباوری بود رفت تا زودتر بخوابه و فردا صبح به سراغ لک پشت بیاد. صبح روز بعد، وقتی آسیابان و زنش از خواب بیدار شدن فوراً به سراغ لک پشت رفتن، و با کمال تعجب دیدن که بله قصری از طلا قصری از نقره و باغهایی از یشم و زمرد آمده است آسیابان که سخت متعجب شده بود گفت تو،, تو تو تو چطور اینا رو آماده کردی ها زن آسیابان فوتی به درو برش کرد و زیر لب وردی خوند و به مرد آسیابان گفت ف... مرد دیدی گفتم این یه لاک معمولی نیست حالا به حرف من رسیدی؟ لاک پشت خندید و گفت <تصفيق> حالا خیلی مونده که پسرتون رو بشناسین آماده باشین که فردا برین قصر پادشاه و بهش بگین که من اون که خواسته آماده کردم آسیابان و زنش که هنوز متعجب بودن سری تکون دادن و رفتن که فردا اول وقت به قصر پادشاه برم آسیابان صبح زود به نزد پادشاه رفت و گفت قبله عالم به سلامت باد پسر من قربان هر چه شما تعیین فرمودید آماده کرده و حالا نوبت شماست که به وعدتون عمل کنین پادشاه به ناچار قبول کرد خلاصه هفت شبان روز جشن و شادی توی شهر و روستا برقرار شد و بعد از اون دختر شاه به خونه همسرش که همون لاک پشت باشه رفت و چند روز بعد هم برای دیدن پدر و مادرش به قصد برگشت. مادرش از اون پرسید دخترم، نگفتی شوهرت چه شکل و ای داره؟ ما که تا به حال اونو ندیدیم. دختر جواب داد آه، نمیدونم مادرچون. من سر شب خوابم میگیره و صبح وقتی بیدار میشم شوهرم از خونه بیرون رفته زن پادشا گفت دخترم این که نشد زندگی تو باید بدونی شوهرت کیه و چه شکل و غیافهی داره دختر با ناراحتی گفت آخه چه جوری؟ مادر گفت دخترم خوب گوشکان ببین چی می امشب که شوهرت قرار بیاد خونه تو باید انگشت دستت رو ببری و روی اون یه مقداری نمک بریزی تا از سوزش اون خوابت نبره. اون وقت شوهرت که از راه برسه میتونی اونو ببینی. دختر به حرف مادرش عمل کرد و نیمه هایی شب دید که لاک پشت به اتاقش اومده و از داخل پوستش جوون زیبا و، قد و بالایی بیرون اومد و رفت توی رخت خواب و دراز کشید دختر خودش رو به خواب زد فردا صبح به سراغ مادرش رفت و ماجرای اون شب رو برای اون تعریف کرد مادر گفت آه، تو باید تو باید لاک شوهرت رو برداری و اونو بندازی توی تنور که شوهر دیگه نتونه به داخل لاکش برگرده دختر این بار هم به حرف مادرش عمل کرد اما به محض ورود شوهرش بخونه یهودی شوهرش به شکل کبوتری در اومده و قبل از پروازش رو کرد به دختر گفت تو باید هفت جفت کفش آهنی پاره کنی تا منو پیدا کنی خداحافظ و بعد پرواز کرد و در دل آسمون کبوت گم شد دختر که دید شوهرش به شکل کبوتر در اومد و پرواز کرده شروع کرد به آه و ناله و گریه و زاری کردن و بعد هفت جفت کفش آهنی به پاش کرد و سر به بیابون گذاشت دختر رفت و رفت و رفت تا بعد از هفت سال و پاره شدن هفت جفت کفش آهنی به چشمهی رسید که دختر ای کوزه به دست از اون آب برمید دختر بون گفت دخترچان یه کمی آب به من میدی خیلی تشنمه دخترک گفت من عجله دارم چون برادرم ملک ابراهیم هفت سال با آدمیزاد بوده و تازه برگشته و خیلی است دختر پادشاه فهمید که ملک ابراهیم باید شوهرش باشه به یواشکی دور از چشم دختربچه انگشتری خودش رو انداخت توی کوزه آب دخترک و کنار چشمه به انتظار ایستاد دختربچه به نزد ملک ابراهیم که رسید کوزه آب رو به دستش داد ملک ابراهیم آب رو تا نوشید، که یه دفعه دید انگشتری توی دهنش افتاد اونو در آورد و با دقت نگاه کرد دید که بله انگشتری انگشتری زنشه و فوراً به لب چشمه رفت و وقتی دید زنش رنج زیادی برای پیدا کردنش کشیده اونو بخشید و بهش گفت مادر من دیوه و پدرم پری اگه تو رو با خودم به خونه ببرم اونا حتماً بلایی به سرت میارن چون قرار من با دختر خالم ازدواج کنم دختر پادشاه به گری افتاد ملک ابراهیم اونو دلداری داد و گفت قصه نخور قصه نخور من تو رو به شکل سیبی در میرم و با خودم به خونه میبرم بعد زنش رو به شکل سیب سرخی در آورد و توی جیبش گذاشت و به خونه برد مادرش به محض ورود ملک ابراهیم گفت بوی آدمی زاد میاد اینجا چه خبر شده ملک ابراهیم اول منکر شد و گفت نه من که بوی احساس نمی کنم. اما وقتی اصرار مادرش رو دید زنش رو به شکل اولیش در برد و مادرش رو قسم داد که اونو عذیت نکنه مادر ملک ابراهیم قبول کرد اما از اونجایی که کینه ی به آدمیزاد داشت دختر رو اونقدر اذیت کرد که دختر بیچاره یه چشمش خون بود و یه چشمش اشک. بله. بالاخره روز عروسی ملک ابراهیم و دختر خالش نزدیک شد. مادر ملک ابراهیم به دختر پادشاه گفت مم. تو باید تمام آبنبارا رو با عشق چشات پر کنی و اتاقها و حیات و کوچه رو هم با مجهات جارو کنی. دختر که دید نمیتونه این کار رو انجام بده به ملک ابراهیم پناه برد ملک ابراهیم هم اول به شکل پاره ابری در اومد و اونقدر بارید و بارید و بارید تا آب رو پر کرد بعد به شکل باد در اومد و تمام اتاق ها و حیات و کوچه رو جارو کشید مادر ملک ابراهیم وقتی از مهمونی برگشت و همه چیز رو مرتب دید، فهمید، کار، کار پسرش، ملک ابراهیمه. ولی چیزی نگفت و یه راست سراغ خواهرش رفت و به اون گفت، ای خوهر جان من به خاطر ملک ابراهیم نمیتونم بیشتر از این این دختر رو وضعیت کنم آماده باش که فردا اونو به ای میفرستم خونه تو تو هم اونقدر اونو اذیت کن که از اینجا بره و دست سر ملک ابراهیم برداره خاله ملک ابراهیم با خوشحالی قبول کرد و منتظر اومدن دخترم ملک ابراهیم که از ماجرای مادر و خالش بو برده بود راه و چاری کار رو به زنش یاد داد فردا صبح مادر ملک ابراهیم به بهانه دختر رو به خونه خواهرش فرستاد دختر اول به دروازهی رسید که یه لنگش بسته بود و یه لنگش باز دختر لنگه بسته رو باز کرد و لنگه باز رو بست بعد به باخچه های پر از بوته‌های خاردار رسید فوراً با صدای بلند گفت به به به به به عجب گلستان زیبایی به به و بعد به راه افتاد و جلوتر رفت رفت و رفت تا به یه سگ بزرگ سیاهی رسید که جلوش کاریخته بودن دختر کار رو برداشت و به جای اون مقداری استخون گذاشت و به راه ادامه داد رفت و رفت تا به اسب رسید که جلوش مقداری استخون گذاشته بودن دختر استخون ها رو برداشت و به جای اون مقداری کاه ریخت جلوی اسب. باز هم جلوتر رفت تا اینکه به اتاقی رسید. توی اتاق یلنگه قالی تا شده دید که فورا خم شد و اونو باز کرد و روی زمین پن کرد. بعد یلنگه قالی باز شده دید که اونو بلافاصله تا کرد اون وقتی بالای اتاق دیو بدترکیبی نشسته دختر به محض دیدن دیو از ترس پا گذاشت به فرار دیو خطاب به غالی ها گفت زود باشین اونو وگیرین. نظرین فرار کنه ها گفتند نه نه ما این کارو نمی کنیم قالی اولی گفت اون دختر مهربون اومد و منو باز کرد غالی دوم هم گفت نه من این کارو نمی کنم تو هفت سال منو پن کرده بودی ولی اون دختر مهربون اومد و منو تا کرد حالا من چطور دیرم میادونو بگیرم و بدم به تو که اونو اذیت کنی و بخوری دیو گزغالی ها نومید شده بود به سگ بزرگ سیاهش گفت زد باش، زود باش، اون دختر رو بگیر و تکه پارش کن، زود باش سگ سیاه دومی تکون داد و گفت من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. تو هفت سال تموم به من یونجب و کاه می دادی. اون دختر امروز اومد و من رو با استخون سیر کرد حالا میخوای من اونو بگیرم و بسپارمش دست تو نه دیو که سخت عصبانی شده بود با فریاد به اسب گفت تا تا تا تا باید اون دختر رو بگیری و بدی دست من اسب به تندی گفت نه این کار غیر ممکنه من چطور میتونم همچی دختر مهربونی رو بدم دست تو تو هفت سال آزگار به من استخون دادی امروز این دختر به من یون داد نه من این کارو نمیکنم. دیو با عصبانیت به لنگه چپ در گفت بجرش زد باش لنگه درگفت. گفت چه حرفا من و این کارا تو هفت سال تموم منو باز گذاشته بودی. این دختر امروز منو برست. دیو به لنگه راسته در گفت تو هم حتما اون دختر رو نمیگیری و میذاری فرار کنه ها؟ لنگه راست در خندید و گفت <تصفيق> البته که این کار رو نمیکنم. تو هفت سال تموم منو بسته بودی. امروز این دختر خوشقلب منو باز کرد این درسته که در حقش نامردی کنن؟ ها؟ دیو به دور نگاه کرد دید دختر همچنان با شتاب در حال دویدنه دیو خطاب به بوتهای خار گفت زد باشید مثل تیر توی قلب اون دختر فرو برید بوتهای خار تکونی به خودشون دادن و گفتن ابدن، ابدا اصلا ما این کار رو تو هفت سال تموم ما رو خار و ذلیل کردی ولی این دختر به ما گفت به به به چه گلستان زیبایی دیو که از کمک همه نومید شده بود خودش تنهایی به راه افتاد تو دختر رو بگیره دختر هم دوید و دوید تا به نزد ملک ابراهیم رسید و فوراً هر دو به شکل دوتا کبوتر سفید در و از دست دیوها پریدن و به شهر آسیابان برگشتن و سالهای سال با خوبی و خوشی زندگی کرد. افسانه ایرانی لاکپشت و دختر پادشاه برگرفته از کتاب نمونههایی از قصه‌های مردم ایران به گردآوری افشین نادری رو براتون نقد کردم. در هر افسانه پیام و نشانه وجود داره که بیان کننده ویژگی فرهنگ و آداب و رسوم و عواطف خاص هر کشوریه. و های زیبای ایرانی حکایت از فرهنگ غنی ایران زمین دارن. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالپور اجرا مهران دوستی صدابردار محسن فرانی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. او افسانه دیگر به تو